به نام خدا صحبت این جلسه در باری مسئلهی به نام امام زمان یا نانچی مویفو و منجی آدمی بشریت و اسمهای دیگه که تحت این اونوان بران میشه نخواهم یه میگه در این مسئله صحبت ندم ها در جهان اسلام که در جهان غرب و در سراسر جهان هم حتی بیعتقادترین آدم ها هم به این امر نجات و امامت هم از فرس حضاب و گنبست و مرچاری هایی که باش مواجه هستن به نیاز ظهور اگناچی همه برسیدن غریز در قهران رسیدن نه حتی از ایمان اعتقاد رسیده باشن هنگر از اونگر امیدی هستن هیچ امیدی به هیچ نجاری نداره الا که یک نفر گویید که از آسمانی از توی زمینی در بیاد و به قهر این بساطه این همه ظلم و شرارت و بدبختی و بیماری و عذاب رو جمع کنه به زهر جمع کنه یک کاری بکنه اون نمید در سرسال جهان مسیح این فکر هست بعد تفضیل در جهان مسیحیت تا این و این نیاز بیشتر در موردش بیشتر حرفی زنه بیشتر فیلم میسازن و علتش هم واضحه برای اینکه جهان خیلی سریتر و بیشتر از جهان شرق و جهان ثقوم به بمب و عذاب رسیده و از خودش مایوس شده دیگه از وضعه های علم و تکنولوژی و این نوزات های اقتصادی سیاسی و این وضعه دیگه شده این دیگه ناباور به این وعده های دنیوی به وعده های این تمدن مدرن دیگه باوری نداره و لذا اون‌ها از لحاظ از جانب سوم خیلی بیشتر به نیاز ظهور یک ناجی رسیدن ورسیدند بالاتر بحث امام زمان و ناجی برای امام صادق هم درباره چندان دینی نیست خیلی قلبی شریدتر اشعری هم رسیدند چرا که اینا دیگه ما هنوز امیدوارین که یک تکنولوژی پیدا بشه این دانش جدیدی، یک کشف جدیدی بیا بیماری‌ها و داخلی‌ها این قضیه‌ها این همه عذاب ها رو جمع کنیم ولی اونا از این راه از ما باز هم و پزشک‌ها هستن چون دانش و پیشرفته دانش علمی و فنی بیشتر فهمیدن که حقیقتا این فریبی پیش نیست وقتی از تکنولوژی ندیم آدم اونجا پیدا این واقعا نماست دیگه تکنولوژی مخلوق انسانه. مخلوق انسان نمیتونه انسان نجات بده که اقلا میتونه تایید میکنه دیگه مخلوق قرار خاله رو نجات بده و اینو هر تصدیه نمیتونه <تصفح> این بحث ناجی و امام میشه گفت هیچ جای تاریخ برندازه امروز انقدر جرکی نبوده این تبدیل یک نیازی وجودی شده دیگه اساسی تر از بحث اعتقادیه این اعتقاد طبیب نیاز شده حتی در کافرها هم نیاز پیدا شده و همه اگر امید به نجات داشته باشند نجاتی سالله سمان به صورت ناجی موجود و ما احساس میکنیم که این ناجی از یک لحاظ بسیار شبیه همون ناجی که در روایت اسلامی و روایت مسیحی ما داریم که اون ها رو دور کنه مجموعی رو نشون میده که ناجی، ناجی این ناجی قهاره اون ظهور امام قهاریت امامه اون امام زمان که قراریت در آخر زمان ظهور کنه به این صورت مسئل قهر و غذاب همین هم ما در روایت داریم که بخش عظیمی نیمی دو از تا دست بوم از بشریت در این واقعی که قرار امام ظهور کنه نابود میشن، حلاب میشن د دل رلیه که میمونن به جبر ایمان بیاره و تسلیم میشن ببین پس این نجات نجات قهارانه است. عدل الهیه که نازل میشه این نجات نجات روحانی و هدایت نیست این ظهور امامت ظهور هدایتی رحمانی نیست از محبت و الهی نیست مجموعه روایتی که در اسلام در مورد ما داریم تماما این چکه حاکمه و زکر. اولان تصدیل میکنه واقعا قرار باشه اگر چیزی اتباه بیفته که این جهان سر و سر بلوام و پرجمر و کفر و فساد و جنون جنایت رو خانده جا بده که عقل و محبت و خواهش می کنه هم این حتما نیست بلکه واقعاً قذبی یک رهدی این که باعث بر کل نیدمت و حروت بیاد و بنیاد این جنون رو هستی در هم بشکنه دید. تو بشر نجان بید. رو هر الان احساس میکنه رواید تاریخی هم این بنابراین ما اگر بسیاری از ماها حتی در جاهن تشعیب این امید و این فکر ما زمانی که مصحله محبت و رحم و هدایت میاد در ما را نمیدونم از درب رحم و رحمت و هدایت این, میده، این فکر, فکر غلطیه نه روایت های که مفهود با ما میرسونند روایت هایی وجود داره و نه واقع نجال موجود نشون میده دیگه جای حرف و نصیت و محبت رو خربانه برای دیگه نیست و روز و روز برای بشتر از این خب، این کلی چند سالا برگردیم، این نظر داقیشتر دا دا اصلا بیاین خود مفهوم امام و ظهور امام رو ام این دو تا یکی امام یا ناجیه به بخانیم که امام ناجی چه است چه بون انسانیست یکی مسئله ظهور زهور امام رو ناشه این مثلا زهور رو بفنیم زهور یعنی چی زهور چی چی آیا واقعا زهور همینه که یکی دفعه از چاب بیرون به آشکار میشه اینه به این مفهومه خب این مفهومه بسیار عبلحانهیه واقعا این حرد بشاری بروز دیگه این رو نمیدونه تصدیح خون فهم کنه این که نمیدونه از زمان در چهر هست یا نمیدونه ما میبینیم ببینیم مسئله به این مهمی در تاریخ که غالب سرنوشت کل تاریخ شنزه ساله باشه رو معیم کنه ما چرا این مباحث به صورت این چیزایی در روایات هست چرا در قرآن اصلا موی از این چرا. مهمی چرا نیست چرا مسئله بیرمهمی در قرآن نسینه نشنیست یعنی به این صورت که در روایت هست اصلا نشانی در قرآن نداره خود همین قضی ما رو الوازه به این که نهیجه میسوند یا بسیاری از اینو بیپای و شایعن و خرافه هستند یک یا برداشت و فهم ما از این روایت چیز جیده و اینی که ما فهم کردیم نبایدی باشی باشی یک دیگری دیگر به دیگر. مثل بباید کنید در روایت های شیئی اسلامی نشانه هایی داریم که میگه هر وقتی نشانه ها در طبیعت در تاریخ اتفاق تا بفتاده اون زمان بلا خضر خراسان مثلا یک و سعی کردیم. همونین داستان سیاموشا اتفاق افتاد دیدید اون نذر به مصطفی خراسانی بود نشاموشا ظهور کردن هزار سال بعد هزار بی سال بیشه. و دویست سال پیشه اول که آدمو چی شد؟ دو دویست سال اول بچو رو نداد تراب. خب خیلی از آقایان که در تاریخ ثبت است از نشانه های ظهور اتفاق افتاد و ظهوری بود که رو یا این یعنی روایت‌ها نشانه ها است یا هماس ظهور جدیتیه. اول این بحث دیگه است. یا واقعا هم ظهور کردن؟ این الان اتفاق افتاده؟ واقعا امام زمان از خودشون ظهور کردن شایدن ببین این یه بحث دیگه است. به نظر ما این دومی آدلاد است. درسته. یعنی در هر دوره‌ای این نشانه ها مجموعه نشانه های جزایی از از می داسود همین احسود درست واقعا. چرا که که خیلی از ما رخ داده ولی اون رخ داده ولی امام زمانی که ظهور نکرده در خیر اگر یاد کنیم امام زمان دوران خودشون ظهور کردند بچه‌ها بس اکثر اینا کشته شدن اجازه شما امام زمان که ظهور سیاپوشا هست از خراسان نژاد سیاپوشا بله دیگه این نژاد متثر شد به امام صادق امام زمان خودش بود از واقعاً از این طرف دیگه اماما دیگه واقعا میشه و بو گفت پنهان بودن امام سجاد اماما برای واقعا اینا ها کچاقی زن دیگه میگذنسته کنی با اینا اعتبال ندار شد امام صادق یکی از امی ازش که ظهور عاشقار داشت. یه بیستی سادی تقریبا ایشون خوستت یافت تا علمی بشه و از جان مردمان اونهای طالب بودن میبادن بیشهشون ببینید زهور کردن با از جمعت نبرین این ظهور شد. رفت پن و حالا در ذهنیت هم ندارم حالا علائم دیگه هم بوده در تاریخ ی زمان مطالبهکردم ینا خیلی از این که مربوط به ظهور زمانه مربوط به قرن پنجم ششم اون دورانه کمین اتفاق افتن و بعد در اون دوران واقعا عرفا بزرگی رخ دادن همونطور که قرن پنجم وشیشم هفتم دوران ظهور بزرگترن رفا ما ود خوب ببینید این علائم مربوط به مامان زمان خودشون بودن، و درست بوده منتها وقتی انا ظهور میکنند ک انهار دست نمیکنه اینار ون میرن نا تکفیر میکنن و اینارو میکشند تکفیر میکنن و میکشند و بعز هم منتظرن که زور کنه داستان این همینطور که ما بخوایم هگر الاظ معرفت نفسی به خودم نگاه کنیم امام زمان با اون پچیکیهای که ما ز ه امامان سداسلام سراق داریم اگر ظهور ما را به مرح محبت به حکم خدا به اخلاص دعوت کنه ما حاضری واقع تنتن بدیم و ن شکلی زندگی کنیم بر اساس سیره ما زند کنیم کدوم یک ز ماضر مطلبا ابتدایترین الدیم ما, ما زیرپا گذاشتیم و ه مییم انها اینا ست اینا حماوت انها با توجن و بشریت و رشد و رفاع و عقل میم در تضاد ما مییم صداقت هرف مفت صداقت محال عزت افت اینها ر گذاشتیم زیرپا ذاشتیم خوب امامزمان بنابران ار دور کنه ملما با باز هم خواهی کش تا زمانی که این نگاه و چنین نفسانیت بر بنابراین در هر دوره امام زمانی بوده ظهور کرده و مردمان انکار کردن خیلی از دیگرام کشتن بعد از امامان صدی اسلام قرفه بزرگ بودن اکثر سرینام کشته شدن بنابراین اونطور ای نیست که این عقل هم تصدیق نمی کنه. اگر اون امام زمان اینی هستش که قرار آخر زمان با اون قهر و برای احقاق عطل الهی دور کنه فقط امام زمان منظور اگر اون باشه و این چرفی به من هم بیدا کنه من چهاریوز که این روزا می‌میرم خب اون ظهورمون چه خاصی‌های بالی‌مان دارد؟ هیچ و برای از اون حجت من باشه من. این همه نه سا ملی‌ها سا آدم قبل از ظهور اومدن از اونیا رفتن بی امام. یعنی بعد گمراه آمدن گوره رفتن دیگه حج جلی نداشتن بای چینینه؟ نه ما در گربان داریم که خداوند هیچ نصد هیچ دورانی رو بتونه حجت و امام ای نمیگذاره هیچ دورانی بدون امام زنده و امام زمان نبوده و اگر نه خودش میگه که من به بانتر از این هستم که امام و حجت خودم را شکار کنم کسی رو محاقظه کنم بخونم به دینه کنم پس بود امام زمانی که قرار در پایان جهان ظهور کنه اون امام هدایت نیست اون امام قرر و, و میاد اصلا تو مال بشریت رو میاد پاک کنه پاک کنه به پیشن تو مال تمدن کافرانه و ظالمانه یکی سراسر شقابات جنایت اینو میتباک کنه اون نجات در باقل نیست اون قصاصه قصاصی لایی عذابی لایی امام هدایت به مفهوم نجاتی که از هدایت و مود و و معرفت باشه اون این امامها در تمام دوران ها هستن قبل از ظهور اون امام آخر در هر دورانی برای هر زادی بر و زمین هست امامان زمان هستن بر روزیمینا اولیا خدا هستن حجت خدا بر روی زمین و هر کسی که علی منادر باشه تا رو پیدا میکنه هر کسی علی منادر باشه اصلا اینا میرن مردم پیدا میکنه و اینا رو هدایت بنابرای می برسیم دو طول رو با هرسندگی کاملا تفکیم کنیم دقیقه از تشی است ما همش دعا میکنیم دعای فرج میکنیم که ظهور کن اگر یه در حوالی باشیم میترسیم چرا برای اینکه اون ظهور ظهور قهر و غذب ظهور قهارانه است میاد زمین اون ظلم و شبابت و کفر و شرخ و نفاق میشوره یه دلقیدی که میبونن بعد اون رو تسکیم میشن ایمان میارن می خب وقتی جان دوران بهشتی و لویزه این برابر میشه و خیلی جالبه روایت که میگن چه صد سال یه افتاد از حکومت هست، بالا همون ما میذارن میگوشن نهایت و به این ترتیب دیگه تاریخ بشر تو مارش بسته میشه. واسه بس ما خیلی نواستی برای اون ظهور تأخیر داشته باشیم، اگه یه ذره داشته باشیم. دقیقاً مثل اینکه ما ما دعا کنیم خدا یادتو توت قهروازه بده برای ما به بکنه. وقتی خب هم آقا تو قرآن هست دیگه قرآن، ما همش میگه قیامت انگار اینکه راست با سر و قرار نمیرسه. به اونا بود که می‌رسه وقتی رسید پشمون می‌شید از اینکه اینقدر اثرار می‌کردید این, می این لحجبازیه در واقع من یکی داری مرفت داشته باشیم، اون ظهور نایی رو اصلا عجبی نداریم براش مگر اینکه واقعا بخوام خودم, خودم از خودم اون قصاص بخوام بگیریم و وقت بخوام که اشتون ظهور رو یه تا بیاد ما رو جمع کنه اصلا بساتی ما رو نجات این در حضاییم اونا مربوط به اون ظهور آخر و زمانی ما نیست و همطور که بادم گفتم تکرار میکنم اگه اینطور باشه تقریبا هزاران میلیاردها آدم ای که قبل از ظغور اومدن و رفتن اینا بمام اومدن رفتن ما در اسلان میدونیم که بمام کافر س پس همه اینا کافر مدنو رفتن پس هیچ مش ندارن دیگه پس خودم هیچ حساب از اینا بکنه اله درست ی که درست نیست پس هر دورها که مهمه حیی حاضر داره که اینا اولیای خدا هستند نور هدایت خدا هستند کسی که اهل هدایت و معرفت و معرفته نال پیدا می‌کنه و در راهی اون نجات پیدا می‌کنه اما عذاب نجات پیدا نمی‌کنه اما زلالت نجات پیدا می‌کنه این نجات نجاتی از عذاب اشقابت این جهان ها و دریافت و درک محبت امامه و نیز الالهس و فلسفه سگیانگی و توحید همین دست راستونیم که تبقیه روایاتی که وجود داره در جهان مسیحی در مورد ظهور مجدد رجعت مسیح در جهان اسلام و تشعیو ظهور مهدی موهود خب این هم احنا فرض کنیم ظهور کردن خب اینکه ظهور کرده میگه من مهدی موهودم سر جماوسانی که میرستم خب زن چه کسی میتونه حقوقیت اینا رو ثابت کنه؟ که اینا راست میگن یا دروق میگن یا مامن یا کذابن نه واقعا همگشنگاری میکنن شنید که DNA اینها رو بگیرن چی چی چیزی وجود داره شناصام این, این کنیم حرف میگن کسی که حرف داشته باشه دین رو میکنه و عهد دینه و لایق دینه خب ما لحظه ای میشینیم آقا فکر کنیم ببینیم این چیزی که ما بهش اتقال داریم تا اصلا بر حرف عقل رو واقعیت اصلا نمی کنم و زیر اصلا قولی هست روایت هست که بعد از امام زمان ظهور می‌کنه شمشیر علی دستشه خب دو هست عکس خاص مثلا کیدی ایزوفقا رو گرفتند مثلا نه ادشوتیو ازش باید سن باشی مثلا عکسش تاداوردی پیش گرفته بودن که ما اینا ببین چیکار کنیم ببینیم الهی ناسی شناسی اینا همونه یا نه به ذوالفقار درست کردن توی دو زمان ما کاری دارن بکمر آورده این میشه دلیل که من امام زمانه. یا رواهی دیگه هستش که مثل یک از نشانهاش دیگه تابوتی هزاری موسی هم در همون تابوتی که هزاری موسی بچه بوده اون گهوارهی که خبونه بودن یا همچی رو درست کردن با تو با چیزی که آدم بگیر مال اون دوارای دوار. یه کاری داره که میتونه ثابت کنه اصلا که میتونه نرف کنه اصلا نفع یا اثباتش اصلا بوده منتقی و هر ممانه ی اسلام در آسمان جبهه دیدم چون وقتی نماز عصر رو در آسمان نوشته میشه که این نماز زمان است. تو چسازی نکنه. الان کار داره با لیزر در آسمان ها با ها در آسمان این پیام رو می‌فرسته. الان مگه پیام واژو تایپواتی مگه در آسمان ها شرکت های چند ملیتی کالا ها رو تبدیق میکنن سایه نور در آسمان خب. ها الان کاری داره مگه در جواب این دور زمان ابرو حضرتا بخوای این نماز زمان تداروکی رو ببینم در آسمان مثل غاب خوردن کاری نداره که با این تکنولوژی جدید با این تکنوشی تمام نشان های موزمان میشه درست کرد هیچ خواهی نمید ببینید پس لده که ما فرض خونی موزمان کرد و مقدوب همیم که این موزمانی این نشان های اینطور باید هست به صاحب خوردن وسیله یک دجال میتونه باشه و ببینید اینها ها نیست پس چی؟ ها بعد ملاک چیه؟ ملاکی تشکیز یک هست یا نیست هیچ ملاک این شکلی وجود نداره دریای رقایت ها نمیتونه یک درصد کسی رو به یقین برسونه که این آقایی که طور کرده اون, ای اون زمان یا این دجاله که بینید من زمان ببینید این واضحه اصلا جایی رست نداره ببینید و هم دازیم اصلا به مفهوم ظهور ظهور یا نیشی ما هم بحث این مسئله مربوط به صهم قضیه ظهور است زهور امام به بیان دیگر یعنی ظهور نور حق در عالم خاک یکم تعریف دل امام وجود داره در قرار و حدیث همینجا این نشون میده امام زمان یعنی انسان کامل انسان کامل یعنی کسی که محل تجلی اراده باری باری تجلی رحمت باری محل تجلیل قدرت و اقتدار و وحدانیت بینیزی با روزگاه پس یک انسان موزمانه انسانی هست که به چنین حدی از معرفت توحید و اخلاص و قدرت روحانی رسیده که بتواند ذات پربردگار رو صفات پربردگار رو از وجود خودش متبربر و متجلی بکنه به اینگر به درجات این تجلی این درجات اون امام هست خب پس ظهور کسی به اسم امام امام زمان ظهور انسان کامل به این کامل می خلیفه خدای حجت خدا بر روی زمین خدا دارده که خداوند وعده داده که لحظه‌ای زمین از حجت خدا خالی نیست هوقت خالی شد تمار بشریت چیزه میشه اینا مامان هدایت هستن برای کافران مسحر قضب ایلالی برای این مومنان رحمت و محبت و توفت و خب از یک لحاظ پس بایستی گفتش که سیر تاریخ سیر تکامل انسانه که کامل انسان هم در هر دورانی است که به اون میگن امام یا ولی الله یا خلیف الله یا انسان امام رو از داستان امام داستانه تکامل انسان در طول تاریخ خوب این تا رو موجود با انسان ها هم دارن بود خب. و امام یعنی پیشوای کمال امام اصلا خود امام یعنی پیشوا پیشوای چی پیشوای کمال انسان پیشوای روح و روحانیت انسان پیشوای معنویت و خلوص و حق و همه صفات و فضائل الهی در انسان هست امام الگه. و او اما بقیه بشریات او بشریت پیشوای بشریته امام یعنی پیشوای بشریته پیشبای تقامل انسان در خب این مفهوم زهورینی همین دباقی این زهور خدا از انسان زهور خدا از انسان و خدابند هم برای همین اصلا انسان را حالی خودش میگه که من چون دوست داشتم خودم رو آشفار کنم خدامو رو کنم انسان را پس امام مخصوض خدا از سلقت امام و کسانی که در راید با موصل در سلس مراتب به همین مفهوم دارید یعنی ظهور انسان اصلا ذاتا محل اراده به ظهور همه انسان‌ها دوست دارن که باطن خودشون رو امیاد، آرزوها، افکار و آلمانهای خودشون رو بر سهی ظهور برسونن و تبقه برشن این یه عمر در انسان همه انسانها کافر مؤمن این رو درشون هست همه انسان ها هر تلاشی کاری که در هر وادی می‌کنن برای ن که بتونن بخشایی از باطن خودشون رو برسید رو برسونن باطن چیه؟ ایدههاست افکار آلمان هاست،, هاست، مفاهیم حقایقی که در درون اون رو درک کردن، اون رو فهم کردن میخوان اون رو متجلی کنن، محقق کنن، به فهم برسونن یعنی چی بشن؟ یعنی امام بشن دیگه ببین پس امامت در حقیقت خصیصه ذاتی و نیاد ذاتی انسانه در واقع همه انسانا دران تلاش میکنن ک مان باشند تمام انسان هر کسی به روش خودش کافران به روش خودشون مولان به روش خودش که رو مفهوم نهایی اینه که انسان بتونه خدا رو و روح خدا رو و اراده الهی رو از وجود خودش متجلی بکنه و ظاهر بکنه این مفهوم ظهور بور و و انسان جزین هیچ کاری دیگه تو زندگیش داره بکنه هرکسی به نفس خودش ناه کنه ببینه داره برا چی داره می‌کنه. حالا اینه که بتونه بخشی از امیال و منویات خودش رو به ظهور برسونه. منطقه مثل اینه که انسان راه و روش این ظهور رو بلد نیستن. دین راه در واقع دین یعنی راه. راه ظهور انسانه. ظهور خدا از انسان. راه و لبش ظهور خدا از انسان. ظاهر کردن حق و ذات خود به بیرون. پاشکار کردن ذات این مفهوم ظهور. پس امامت به این معنا در همه انسان ها اونطور اونتا وقت مؤمنان و انسان ها اعلی که این راه رو آموختند که راهی شجوریه کافران هم همین کارو میکنن میکنند قطعشون همینه و در رواره رو بشون بیشتر دواش میکنند ناکام بیشند حتی در تحقق ابتدایی تنین آرژی های خودشون هم این چه صورت مادی آل دو ارمان‌هاشون میشه شرایطی میونه فراهم میشه ولی اون مفهومیه که اینا منظور داشتن اتفاق نمیفته یعنی همش ناکامن و پوچ میشن در بیرون خب معنا ایمان و معرفت در واقع میشه که علاوه بر بیا بنابراین به خدا ها تا به انسانها بیاموزند که چگونه بتواییم به, به قدرت ظهور برسیم به قدرت ظهور خب برای این ظهور برای این ظهور باطن باطن انسان دو برش داره یکی ذهنیات یکی قلب میشه معنویات یا مادیات ذهن قدم روی ظهور امیال و مادی. مادی نهران تاکه انسان بخواد تعین بیرونی و بخشه اینا مادیات میشه دیگه حتی آرزی های معنوی هم که قرار باشه که تعین و جسمانیت بیرونی بزا کنه این خودش دونویت حساب میشه ببینید مثلا ظهور در نقطه مقابل غیبت قرار داره خب این اعتقاد وجود داره که ما در رسته قیبت درار داریم قیبت خوب. ما اگه بتونیم این معنا رو بفهمیم کل راز واقعا فهمیم که ممزمون غالبه یعنی چی و ظهور یعنی چی ببینید براوند کل آدم هستی رو ما قلیم باوریم در معرفت اسلامی و مخبوصاً شیعی و عرفان اسلامی بر این بابرین حتی در عرفان مسیحی و عرفان حتی بوداییزم این مفهوم بطور کرده وجود داره که آدم مسیحی عرصه زهور و معرفی خداست خدا بالا همین خلق کرده تا خودش رو ما ما این بحث رو در فرقیت نوشته هم مخاصر کردیم اینجا فقط تیتوار ازش رو برمی کنیم ببینید کل کائنات کل طبیعت زمین و آسمان و هر آنچه که در آنشه است، کل این طبیعتی باید وی زمین هست حیوانات ریاهان نباتات ستارک ها همه اینا ها قدم روی ظهور صفات خداست صفات خدا صفات خدا یعنی چی؟ یعنی خلقتش خالق مسور مدبر مغیر مثبت رزاق محی ممید زنده کننده کشنده نابود کننده محف کننده اثبات کننده صورت بخش روزی دهنده تقسیم کننده و باید آخر ولی انسان رو خدا میگه خلیق خدام کردن از روی خودم دروده میدن انسان محل ظهور ذات خداست شبید؟ همین همینه که گفته شده که تا قرآن داریم که خداوند زمین آسمان ها رو خلق کرد و ما رو به تسخیل وجود انسان دارو بردنی عمل کرد که تسلیم انسان باشی. ببین، ببینیم خداوند تمام صفات خودش رو تسلیم ذات خودش کرد ذاتش که انسان فقط کی میتونه تسخیم باشه اینقدر با تسخیم ذات خدا باشید تا بسونه تمام صفات خدا رو منکل کامینات رو به وزگیره یا بیمومنی مخلیس باست خود باشه اصول میزان که تسلیم ذات خداست میتونه کل کائنات رو پذیرا باشه در خودش برای همین طریق ایمان در قرآن اینه کل شیء آسینا فی ما مبین کلی هر آنچه که در عالم هستی هست متأصم متوسل متوکل و متمرکز در, در وجود امام آشکار چرا برای خود ذات خداست آن این طبیعی است که چنین باشه همین که دست من تسلیم اراده من دیگه تمام هر برای من می‌کنه دیدی برای این صفات عضوی از, از روح و اراده میاد. خو من, من همینطور بر اینطور. برو دیگه برام این گازو، دیفیژن همین چیزیه دیگه. خب بعضی میشن که بذاری که خواستم تعریف بگذارم مثلا تو گوش میذاره. خب ببین بعد اینا معلومه تسلیم ذات میشن، روحشون اراده‌شون از ذات دادن جنون. و امروزه همه ما میبینیم جنون مبتلا این. والا همین اساس این اصل تشنج خب انسان به میزانی که واس تسلیم ذات خودشه قرق در ذات خودشه به ذات خودش را پیدا کرده او امامه و میتونه ذات خودش رو که خداونده از خودش چه کنه؟ آشکار کنه یعنی چی رو؟ یعنی جمال خدا را آشکار کنه کل آدم هستی قلم روی ظهور کمال و جلال خداوند، انسان محل ظهور جمال خداوند، جمال ذات وحدانی خداوند. این محل زور خود خداست نه مخلوقات و قدرت خدا باید من خودم خودم هم. این دفتر منه این میز من این خونه منه این تلویزیون منه اینا من نیستم ولی مال منم ولی من نیستم درسته این آخرقت من ذاتم حالا انسان محل ذات خداست بر رسالت او در آخر نستی اینه که بتونه جمال ذات رو از خودش متجلی کنه یعنی به چم مقامی برسه که خداوند از وجود او آشکار بشه یمین ظهور انسان اینه و برا این خلق شده غیر از این و غیر از منظور هر هدف و کار دیگه داشته باشه او از انسانیت خودش خارج دیگه او انسان نیست و از اونجایی که قرار از انسان باشه و روی خدا در ذات ازلی او حضور داره اگر نخواد این باشه لذا انسان قدم روی؟ رسوخ و سلطنتش حیاتی میشه انسان تا برای برگرده و خر خوب بشه ایجوان نمیدونه برای روی خدایی داره سک روی خدایی نداره برای همین انسان دیوانی میشه یعنی شیطانی میشه این ببینید ما در روایت نخونیم که از آدم عبود بشر در بعد خلقتش قبل از اینکه دوچار وسوسه شیطان بشه قبل از اینکه به نجاف و زن و بچه و دنیا فلسطی بیفته و خدا خداقافل بشه چون آزمه داشت، که همه او رو وجوده میکردن کردن آزمه ایش آشکار بود این قضوبیت آشکار بود حالیفه خدا بمتونم. آدم برا می در فرنگورف ایمان بگیم آبا آدم بازی آدم بشه آدم میشه این برگرده بستیم ای مثل از از آدم بشه برای همین هم یکی از القاب امامان ما وارث وارثان آدم هستن که خود امام حسنه همه امام هم دارند یه بار دیگه اینا با آدمیت خودشون رسیدن در واقع آدمی آدمیت خودشون رسیدن با آدمیتشون برسه ظهور رسیده برقی انسان ها در واقع میشه گفت قایبن دیگه از امامت و علویت خودشون و از مقام خلافت اللهی خودشون قایبن همونطور که خدا را فراموش کردن آه. اون روح الهی هم در خودشون درشون گم شد خود خود رو گم کردند، خود از خود قایب شدن خود از خدا قایب شدن ببین خب حالا امام زمان کسیه که ظهور مقام خلافت اللهی خودشه ظهور ذات بر ظهور جمال و نور حقه خب حالا چه کسی میتونه او رو پیدا کنه او اینا در است دیپد دار با غیبت او مربوط به غیبت مردمه مربوط به مردمه خود از خود گمن و غایبم انسان به میزانی که به خودش ماده در اتش آدمیت خودشه در اتش روح انسانی الهی خودشه در اتش دیدال با خداست در آتش خداست در اتش هفت خودشه به خود اومده نمیباشه واش داره خودش رو پیدا میکنه او امام زمانش رو پیدا می‌خواهد کرد و میخواهد شناخت هر چند به نیزانی که خودش رو میشناسه خداوند رو در خودش درک کرده امام زمانش در بیر میشناسه و این طبیعی امام زمانش تا ببینه حتی قیههاش میکنه درک میکنه به این خودشه اون خودشه کیه؟ یعنی خودشه باز این ذات خودشه برای خدا یکیه خدا سطحانی سشکه بنابراین بنابراین مثلا قیبت این که گفته میشه که مومینی مسلمانی هر اهل دینی آه که دای خدا داره تا دا زمانی که امام زمان خودش رو پیدا نکرده او کافره حتی رواید داریم که کسی که انسان تا زمانی که امام زمان خودش رو پیدا نکرده و در قدایت و قرار نگرفته بر همسر خودش حرامه این رابطه به همسرش زناه یعنی برا هم که زنا نه این برای هم اینکه زنده گناه نوشته میشه رابطه زنایی رابطه هیچ حرامیست دیگه رابطه زجر و زور و فش شد دیگه خب بیمین تمام زناشویه های باقرانه ما ماهیت زنایی هایی حرامن به زور زنگه به هم ماهی زننن بنابراین این انسان تا زمانی که مامو خورج نکرده کرده و تقریب الله هایی که بود در زنانی مرده اصلا زندگی براش حرامه چرا که انسان فقط برای همین قرار شدهده غیر از این هر چه باشه حرامه اصلا خودش بر خودش حرامه بر نفسی که میکشه حاممه نفسکشی در از تا براش حرامه لطفاا نفسکش در جان همه چیزش در شده. چرا برای اینکه از حق وجود خودش بیگانه و از خودش وارد و اصلا فراموش کرده که این چیه کار قرار باشه؟ قرار بوده که چه بشه بشنن چی باشه قرار؟ نوارد امام زمان دوبای نیست که پیششیم بشمریم چه ظهور میکنه؟ یا دعا کنیم. نه؟ دعاش اینه که به خودمون بیان معرفت نفس پیدا کنیم. چرا معرفت نفس و امامت در فرنگیشی امر واحدیه؟ ده ده انسان به میزانی که در آتش اون گمشده الهی، شده معنوی و روحی و خدایی خودش. آنی متفاوته خودشه، هنوز خودشو کم نکرده از خودش قاهر نشده، دنیشیان نرفته، این انسانی از آدمی گم نشده در بالای این دنیا و دنیا ها انسان در هنگره میشه گفت میتونه امام خودشو درک کنه. تا در به میگه در این راگان و میدانه در این جستجوهای امام میشه بداند. امامش همین اساس در نزدیکی اوشه. چه باز امامش بیام پیدا میکنه؟ با اساس و امتدان امامی که میذین انسان پیدا میکنه. است. امام در واقع این انسان رو پیدا میکنه از ظلمت همه این انسان ها موجودن یعنی قایب اند از ادمیت خودشون و امام که باید حاضره در حیره امام قایب نیست ماهی میکنه اتفاقا فقط اوست که حاضر و ظاهره حاضر و ظاهره به مقام الهی خودشه خب ببینید برای همینه که معرفت نفس خودشناسی تنها راه شناختی امامه هرگه خود راشناخت رب بشت شناخت ببین رب در اینجا امام ها الله نیست از ترکه رب انسان به الله بیرسه خودشناسی و امامشناسی دو بیرسه کس انسان به میزانی که درد خودشناسی داره ها در جستجوی امامه و امامش رتما خواهد یاد خود خدای میبوده رو داره در و که میگه تلاش کردند، جهاد کردند، توابکش کردند و صبر نمودن خداوند بر آن همه نهاد و از نزد خود امام و رسول شایدی بود تا هدایت اجازه و نجاتی نجات یابند. ببینید، اصلا هم بیاین. اول ما بگیم همه تون نجات دنبال نجاتندی. نجات از چی؟ نجات از بیبولی نجات از بیکسی، نجات از بیعبروی، نجات از فقدان پست و مدرک و ریاست و سیاست. خب دین به ما هیچ اجورا قرار نیست برسه اصلا امام قرار نیست این کارهارو انجام بده علم و تکنولوژی و اقتصاد و پول و بانک و وام و اینها نیازاد ما برطرف میکنن دیگه اصلا اینجاج با خدا نیست اصلا نجات به مفهم نجات معنوی و روحانی است انسانی که در صدق نجات روح خودشه امام خودشه به داره و در درجات روح به امام خودشه یعنی انسان به میزانی که روح به خودشه یعنی روبه امامت خودشه لازار امام خودشو در بیرون خواهد شده برای رو امام قاید نیست حاضر میشه این امام امام رحمت امام محبت و است نه اون امام آخر از دامان قرار زور کنه اون امام قسم و قذب و از انتقام و امتقام خب ببینید نجات که میگیم همه انسان ها در جستجوی ناجی هستند در جسوی چی کسی هستن در جستجوی کسی هستند؟ که اون‌ها رو برای آدم بودن خودشون دوست داشته باشه یک کلام تمام آدمات کافر و نااهل همه در به در کس کسی که خودش رو برای خودشون دوست داشته باشه یعنی زادی‌شون دوست داشته باشه یعنی روح انسانیارشون دوست داشته باشه در حقیقت یعنی روح الهیشون دوست داشته باشه خوب چه کسی روح الهی تو رو دوست داره انسانیت باادب گیرت دوست داشته باشه یعنی که خودش آدم باشه و صاحب روح الهی باشه نمان؟ بلا خوب. خب بنابراین در حقیقت همه در جسجوی کی هستن؟ امامن چون کسی وقت امام که میتونه انسانها را برای خودشون و برای رستگاری روحشون دوست داشته باشه و اینا یاری بده تا این روح و ذات داهی رو در خودشون متورور و متجلی بکنن یعنی به خودشون برسند، به کام خودشون برسند. انسان در قهطیه روح خودشه، در قحتی خدای خودشه در بگانگی نسبت به ذات خودشه تمام بدبختی ها،, ها و عذاب ها حاصل این بگانگی و دوری و قفزت و قیبت نسبت به خوده نسیان نسبت به خوده بنابراین در حقیقت میشه گفت ناجی فقط همامه یعنی چنین انسانیه که میتونه دیگر انسان رو را به خاطر انسان بودنشون دوست داشته باشه و به اینا یاری بده تا انسان بشن قوادم بشن و کسی که در اتش آدم بودن امام خواهد و امام برای او امام رحمت هدایت نور و محبتی در غیر این صورت هیچ ناجی نیست و اون نارچی آخر زمان هم میاد تا بساط جهل و جنون و کفر و خودپرستی و دنیاپرستی رو برچینی میبستی در منوالی ما میبینیم که نگاه کنید درستان مشکل انسان مدرن چیه تنهایی و بی کسیشه بی کسی که هیچ کسی نیست که اولو داشته باشه برای خودشن. هر کسی این دروازشه هست برای منافع دنیا بنابراین در واقع همه در رسیوری امام چرا بران که امام مزهر تنهایی, تنهایی اون تنهایی الهی این تنهایی و نظر تنهایی همه احسانها رو درک میکنه و تنهایی همه ها رو در میابه و اینا از تنهایی نجات میده در حقیقت گفت فقط امامی که دوست در واقع همه در جسده امام میگردن دنبال اون کسی که اون کس همون امام ناجی همینه یعنی تو رو نجات بده از تمام بدبختی ها چون تمام بدبختی ها و قهتی ها و های تو حاصل های تو از رو و خدای رو خودست امام میاد تو رو به خدای خودت مربوط می کنی. چرا برای که خودش مظهر ظهور وحدانیت خداست مظهر ظهور ذات وحدانی خداست و ظهور سمدیت و بینیازی خداست و تو رو از آدم و آدمیان بینیاز میکنی تو رو در همه دنبال یک نفر دارم میادم و همون و امام یعنی چین انسانی است پس امام در حقیقت اون کموشده که همه از این دنبادش امام ذات نفس واحده همه انسان هست اون جمال روح انسانی بنابراین امام تو کسیه که بتونه تو رو به خود برگرده و تو رو به خودت متوجه کنه و به نشون بده که تا چقدر تو بیگانه از خودتی به میزانی که روی تو رو به خودت رو برمیگردانه اون امام توست بس امام تو باز یک عارف باشه یک انسان خودشناس باشه یک انسان به ذات رسیده باشه تا تو را هم جهت ارتباط تو با خودت و با ذات خودت هم یاری بده آدرس زات رو بدون کجاست تا تو به خودت برسونه و بیگانیگی و در و, و در این دنیا نجات بده تو رو به خانه وجود خودت که خانه خداست تا بر جای خدا و خانه بنشین. تو از این بیگانگی و گریز از خود نجات بده تو به خودت بیاد. امام چنین کسی هر کسی با تو بتونونه این کاری به به هر دریجه ای؟ امام بنابراین پس ما سلسل مراتب امامت داریم در جهان داره هر انسان عارفی در هر دریجه ای امامی برای اطرافیان خود بیشت و انسان یک شب هم با اون انسان کامل با ما خلیفت الله هم نرسیده گام به گام انسان با این دارو تی کنیم. پس از بنابراین قرآن میگه که مومنان های هم دیگه هستن یعنی امامان هم دیگه هستن دیگه. پله پله میرن بالا بی یاری همدیگه رو کنار هم دیگه میرن بالا تا ادامه برسه به اون امام کامل و اون امام مطلق که مظهر جمال خداست بالی شدن اونجا این راه واستی بشه و این راه هم تماماً راه معرفت نفس و خودشناسی و اهل باطن شدن و از در دنیا بیرون آمدن و به خود بازگشتن و به با خود وارث شدن هر چند که تو این کار بکنه امام تو الله مقدس میشه چی باشه؟